در زمانهای خیلی قدیم، در استپ یا همون جلگه الفزار شخص فقیری به نام آل دارکاس زندگی می کرد. این مرد جزی اسب چیز دیگه ای نداشت، در عوض آدم باز عجیبی بود و در مکروهیله دست شیطان را از پشت می بست. در همون استپ، مرد ثروتمندی به نام شیگای بای زندگی می کرد. که با اون که ثروت و اندوخته زیادی داشت ولی خیلی خسیص بود و لعامت او به جایی رسیده بود که از دادن یک قطعه یا یه جرعه آب به افراد گرسنه و تشنه خودداری میکرد. یه بار آلدار کاس حقوق باز در صدد شد تا درس بزرگی به این مرد بد جنس بده سوار اسب شد و خودش رو برای رفتن پیش شیگای بای آماده کرد وقتی مردم از این جریان باخبر شدند، آلدارکاس رو مسخره کردند و گفتند شیگای بای ازت پذیرایی شایانی خواهد کرد، گوسندای زیادی برات قربانی خواهد کرد و غذاها و های خوشمزه خوشمزه‌ای بهت میده. آلدارکاس جواب داد: به هر حال خواهید دید. مدتی راه رفت تا محل سکونت بای رو پیدا کنه، اما همه جا بهش گفتند شیگای بای از اینجا رفته و به جایهای دیگه نقل مکان کرده. آلدارکاس ناچار به جاهای دورتر رفت و ناگهان میان استپ با چادری روبرو شد که میان نیزارها قرار داشت آلدارکاس مدتی فکر کرد و با خودش گفت اگر شگاهی بای بین این نیزارها ساکنه بیدلیل نیست بدون شک اینجا را برای اون انتخاب کرده که کسی نتونه به چادرش نزدیک بشه و او خانوادهش بتونن بلافاصله خبردار بشن در واقع اگه نیزارها حرکت می کردند و صدای از اونا برمیخواست، معلوم می شد که یکی داره به چادرها نزدیک می شه و اگه کسی به طرف چادره اونا می رفت، برای اینکه خانواده بای ازش پذیرایی نکنند، فوراً تمام غذاها و خوراکی ها رو بر و از نظر مهمان مخفی می کردند. آل دارکاس حق باز کاملاً به طرز فکر بای پی برده بود، بنابراین فکر کرد چه وسیلهی باید انتخاب کنه تا از بین نیزارها حرکت کنه و بتونه بیس سر و صدا خودش رو به چادر شیگاهی برسونه. آلدارکاس با خودش گفت حرکت از بین نیزارها کار ای نیست و حتما سر و صدا ایجاد میکنه. ناچار به این حقی متوسل شد که اسبش رو به گوشهی برد و به جمع کردن سنگ پرداخت. سنگ های زیادی برداشت. وقتی شب شد، اونا رو یکی بعد از دیگری بین نیزارها پرت کرد. آلدارکاز یه سنگ مینداخت. در نتیجه سر و صدایی بین نیزارها به وجود می اومد. بای از چادرش خارج میشد و اطرافش رو نگاه میکرد و میپرسید: کیه؟ وقتی میدید کسی جواب نمیده، دوباره داخل چادرش میشد. آلدارکاز سنگ دیگه‌ای پرت میکرد و دوباره سر و صدا ایجاد میکرد. شیگای بای هم دوباره از چادر خارج می‌شد و اطرافش رو نگاه می کرد ولی کسی رو نمیدید بالاخره شیگای بای با خودش گفت بدون شک این باده که نیزارها رو تکون میده و صدا ایجاد میکنه به همین دلیل وقتی چندین بار این صداها رو شنید دیگه از چادرش خارج نشد. این همون چیزی بود که آلدارکاس انتظار داشت. بنابراین دهانه اسبش رو گرفت و در بین نیزارها راهی برای رسیدن به جایگاه اون مرد خصیص برای خودش باز کرد با احتیاط یک قدم جلو میذاشت دوباره می استاد. دوباره قدم دیگی برمی داشت و کمی توقف میکرد بالاخره به محل سکونت مرد خصیص نزدیک شد آلدارکاس گوشه چادرش رو بالا زد و داخل رو نگاه کرد در میان چادر چیزهایی مثل فرش، بالش، صندوق به چشم میخورد و یکی بین دیگری قرار داشت میان چادر کنار آتش شیگای بای با خانوادش دیده میشد در اون میان دیگی هم دیده میشد که روی آتیش بود غذایی از گوشت گوسفند تهیه میشد و شیگای بای غذا رو نگاه میکرد و اونو میچشید تا ببینه پخته یا نه همینطور داشت سوسیس تهیه میکرد و دخترش پر غازی رو میکند و خدمت گذار کلی رو روی آتش سرخ میکرد. آلدارکاز ناگهان در میان چادر جهسی زد و با صدای بلند گفت سلام. خیلی فاصله شیگای بای در دیگ رو گذاشت و سوسیسا رو قایم کرد و زنش روی خمیران نشست و دخترش هم غاز رو پشتش مخفی کرد. خدمتگزار هم سر گوسفند رو قایم کرد. شیگای بای جواب سلامش رو داد و از آلدارکاس پرسید از استپ چه خبر؟ آلدارکاس جواب داد اوه بای در میان استپ خبرهای و چیزای جالب و حیرتاوری وجود داره که همه رو نمیشه تعریف کرد خب اگه همه رو نمیتونی تعریف کنی اقلا یکمیشو برامون بگو بسیار خب وقتی به چادر نزدیک میشدم مار بسیار بزرگی که به اندازه سوسیسون بود دیدم که به طرف شما حرکت میکنه شیگای بای ناراحت شد و چیزی به زبان نیاورد. آلدارکاس ادامه داد: باور کن حرفام را قبول کن. سر این مار خیلی بزرگ و سیاه بود، اما نه به اندازه سر گوسفندی که خدمتگزار تو اون روی آتیش سرخ کرده و الان پشتش مخفی کرده. شیگای بای دوباره ناراحت شد، اما حرفی نزد. آلدارکاس متقلب باز هم ادامه داد و گفت: مار مثل این دیگی که توی اون گوشت قرار داره سوت میزد و من از روی اسب پایین اومدم و سنگ بزرگی رو برداشتم و با تمام قدرت به سرش زدم مار زخمی شد سر مار ترکید و مثل خمیری که زن طلانون قایم کرده به نظر میرسه اینا چیزای عجیبی بود که توی استپ دیدم اگه دروغ بگم انشالله همونطور که دخترت پوست این غاز رو میکنه پوست منم کنده بشه شیگای بای دوباره ناراحت شد اما چیزی به زبان نیاورد آلدارکاس هم به خوردن غذا دعوت نکرد. آلدارکاس و شیگایی بای اون شب تا نصفه های شب بیدار موندند و درباره موضوعات مختلف با هم صحبت کردند. در میان دیگ گوشت گوسفند پخته می و بوی اون همه جا به مشام می رسید. که اون روز خیلی راه رفته بود گرسنش شد و اظهار خستگی میکرد و از طرفی مرتبا دیگ رو نگاه میکرد و آب دهنش را قورت میداد. شیگای بای دیگه غذا رو نگاه کرد و گفت دیگه من تو میتونی تا شیش ماه به همین کیفیت بجوشی آلدارکاس هم کفشاش رو کند و پس از خمیازه کشیدن روی تخت دراز کشید و گفت کفشای من شما هم میتونین تا دو سال در اینجا استراحت کنین موقعی که شیگای بای متوجه شد که مهمونش خیال رفتن نداره در صدت شد بدون اینکه شام بخوره دراز بکشه هر دو نفر خودشون رو برای خواب آماده کردند و دیگه گوسفند رو روی پایه اجاق به حال خودشون گذاشتند. شیگای بای با خودش گفت: موقعی که آلدارکاس خوابید، من و افراد خانواده‌ام میریم و غذا رو میخوریم. آلدارکاس با خودش گفت: به محض اینکه شیگای بای خوابید، به طرف دیگ میرم و به حد کافی غذا میخورم. شیگای بای روی تخت دراز کشید و به خواب رفت و با صدای بلندی خور, خور کرد. در همین موقع آلدارکاس از جاش بلند شد و تمام گوشت های پخته دیگ رو خورد و به جاش کفش های شیگای بایی رو میونه اون گذاشت. سپس سر دیگ رو به جای خودش قرار داد و دوباره روی تخت دراز کشید و منتظر موند که ببینه چه اتفاقی میافته. شیگای بای از خواب بلند شد. کمی گوشت داد. نگاهی با آلدارکاس انداخت و وقتی مطمئن شد که کاملا به خواب رفته با احتیاط زن و بچهش رو بیدار کرد و گفت سود باشید بلند شید تا وقتی که آلدارکاس خوابیده همه غذاتونو رو بخورید. شگاهی بای سر دیگ رو برداشت و در میان تاریکی به جای گوشت کفش هاش رو در آورد و اونا رو قطعه قطعه کرد و میان بشت ریخت و اون وقت همه ای افراد با عجله به خوردن پرداختند و مرتب دندان میزدند ولی نمیتونستن خوردهش کنند و اونو ببلند. چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا گوشت این همه سفت و سخت شده بود؟ شگاهی به زنش گفت: تمام این زیر سر این آلدارکاس بلگرده و به خاطر اونه که گوشت این اندازه سفت شده و نمیشه خوردش اما زیاد مهم نیست وقتی او رفت دوباره گوشت رو میپزیم و غذای مفصلی می خوریم. فعلا گوشتها رو بردار و به میان دیگ بنداز زن شیگای بای قطعات چرم رو جمع کرد و اونا رو میان دیگ ریخت بعد شیگایبای بای به زنش گفت تا اجاق رو روشن کنه و برای او با آردی که خمیر میگرفت گرفت نونه تهیه تهیه کنه موقعی که کلوچه ها حاضر شد، شیگایبای بدون اون که بذاره سرد بشه، کلوچه ها رو برداشت و با دو دست روی سینش گذاشت و به طرف استپ حرکت کرد تا گله ها رو از نزدیک نگاه کنه. مرد خصیص خارج شد. آلدارکاس هم بعد از او از چادر درآمد و به شیگایبای رسید و گفت: اوه oh, بای عزیزم خوب شد زود فهمیدم و الا مجبور می شدم بدون خداحافظی از اینجا برم. فردا من از اینجا میرم. اون وقت بای رو در آغوش گرفت و او رو چنان به سینهش فشار داد که تمام کلوچه های گرم بدن و سینه شیگایی رو به شدت سوزوند. شیگایی بای مدتی با درد ساخت ولی بالاخره طاقت نیاورد و فریاد زد این کلوچه ها رو آتیش میزنه. اون وقت کلوچه ها رو از خودش دور کرد و گفت همه اونا رو میدم تا سگا بخورن. آلدارکاس گفت چرا به سگا بدی؟ همه رو به مهمون خودت بده تا بخوره. اون وقت تمام اونا را برداشت و مشغول خوردن شد. آلدرکاس گفت: "کلوچه‌هایی که خانم شما پخته خیلی خوشمزه است. مدتی بود از این چیزا نخورده بودم." شیگایبای ساکت موند، در حالی که گرسنه‌ش بود، به سوی استپ رفت تا کارهای خودش را انجام بده. اون وقت عصر روز بعد به چادرش برگشت، ولی چی دید؟ آلدرکاس هنوز حرکت نکرده بود و در میان چادر نشسته بود. شیگایبای رو به او کرد گفت: دیروز از من خداافظی کردی تا حرکت کنی آلدارکاس جواب داد میخواستم حرکت کنم ولی عقیدم تغییر کرد من در اینجا خیلی راحتم. شگاهی بای ناراحت شد ولی کار میتونست بکنه؟ چون بیرون کردن مهمون مشکلات زیادی داشت. روز بعد شیگایبای بای وقتی خواست به استب بره به زنش گفت یک کیسه چرمی پر از شیر تهیه کن اما موازه باش آلدارکاس اونو نبینه. زننش کیسه رو پر از شیر کرد. بای؟ اون زیر لباسش مخفی کرد و از چادر خارج شد و فکر می کرد که این بار همه چیز روبه راه خواهد بود اما باز هم آلدارکاس با عجله به طرفش دوید و او رو میان بازوانش گرفت و اونقدر فشارش داد که در کیسه چرمی باز شد و شیرها روی لباسش جاری شد شیگای با خشم کیسه رو گرفت و اون رو به آلدارکاس داد و فریاد زد بخور بخور آلدارکاس جواب داد حالا که پیشنهاد میکنی میخورم این بار هم شیگای بای آن که چیزی بخوره به طرف استپ براه افتاد و آلدارکاس هم به چادرش برگشت و با زن و دختر بای به صحبت پرداخت آلدارکاس مدت زیادی به همین ترتیب پیش اون مرد خسیص موند و هر بار که شیگای بای حققی رو به کار میبست نمیتونست مهمان مزاحم رو از چادرش دور کنه و یا از خوردن غذا محرومش کنه چون آلدارکاس به هر ترتیبی بود شکمش رو پر می کرد و تمام اقدامات میزبان خودش رو نقش بر آب می ساخت. از صبح تا غروب شیگایبای فکر می کرد که چجوری می از شهر آلدارکاس نجات پیدا کنه و انتقام خودش رو ازش بگیره. بعد از مدتی فکر کرد که آلدارکاس با اسبی که خال سفید پیشانی داره به اونجا اومده. شیگای بای تصمیم گرفت اسب رو بکشه برای همین به اسب نزدیک شد و طوری نگاهش کرد مثل اینکه میخواست ازش سواری بگیره اما آلدارکاس فوراً به تصمیمش پی برد به همین منظور هنگام شب لکه سفید پیشانی اسب رو سیاه کرد و لیه لکه سفید در پیشانی بهترین اسب بای درست کرد بعد به چادر برگشت نیمه های شب شیگای بای بی سر و صدا از چادر خارج شد و بین عصب ها رو که سفیدی در پیشونی داشت انتخاب کرد و سرش رو برید. بعد فریاد زد، آلدارکاس چه بدبختی بزرگی برای اسبت به وجود اومده؟ اما آلدارکاس از چادر خارج نشد. گفت، ناراحت نباش، اهمیت نداره، اگه سر اسب هرچه زودتر بریده بشه بهتر میشه از گوشتش استفاده کرد. شگاهای خوشحال بود از اینکه تونسته انتقام خودش را از مهمونش بگیره. فقط هنگام صبح متوجه شد که او بهترین اسب سواری خودش را از دست داده بعد از شدت خشم به خودش لرزید اما کار میتونست بکنه؟ ناچار دستور داد که گوشت اسب رو بپزند و بخورند. بالاخره آلدارکاس مدت زیادی پیش شیگی بای موند و تصمیم گرفت دختر بای رو به همراه خودش ببره فکر میکرد باید با این دختر ازدواج کنه و الا در کنار یک چونین پدری این دختر هم مثل او خسیص میشه. اسم دختر شیگای بای بیزبلوک بود. آلدرکاس سعی داشت تا رضایت دختر رو از حمله لحاظ جلب کنه و دختر هم گهگایی به او نظر میکرد. در یکی از روزها وقتی شیگای بای طبق معمول میخواست به استپ بره آلدرکاس بهش گفت بسیار خوب. دیگه خیلی در اینجا موندم. حالا موقعی که به منزلم برگردم، و امشب دیگه منو در چادر خودت نخواهید دید. شیگایبای حرفش رو شنید، ولی نمیتونست بهش اعتماد کنه. آلدارکاس گفت: میخوام کفشای خودمو تعمیر کنم، و لازمه که بیز رو با خودم ببرم. تو باید اونو به من بدی شیگایباي برای این که از دست این مهمان سمج راحت بشه گفت: بسیار خوب، بیز رو بردار و کفشات رو تعمیر کن، و هر جا که خیالداری برو. الان موقع اونه که حرکت کنی. وقتی این حرف رو زد از اونجا دور شد، آلدارکاس به چادر برگشت و به زن بای گفت: حالا که بانوی خونه وسائل سفر دختر خانم خود بیز رو فراهم میکنه، او باید به همراه من بیاد. زن بای گفت: مگه عقل تو از دست دادی؟ فکر میکنی که بای بیز رو به شخصی مثل تو میده؟ آلدارکاس گفت: بله، اونو به من داد. اگه باور نمیکنی برو ازش بپرس. در اینجا باید توضیح بدیم که بیز هم نام درفش کفش دوزیه و از طرفی اسم دختر شیگای بای هم بیز بود. بنابراین زن بای وقتی با عجله خارج شد و فریاد زد شیگایی راسته که تو به آلدارکاس قول دادی بیز رو بهش بدی؟ بای گفت بله همینطوره بهش بده که او از اینجا حرکت کنه و بره بعد از گفتن این کلمات، شیگاهی بای اسبش رو شلاق زد و چهار نل به طرف استپ روان شد. زن جرات نداشت دستور شوهرش رو اطاعت نکنه. ناچار وسایل مسافرت دختر خودش بیز بلوک رو فراهم کرد و اجازه داد تا از چادر خارج بشه. آلدارکاس دختر رو, رو روی اسبی که لکه سفیدی روی پیشونیش بود سوار کرد و چهار نل از اونجا دور شد. بین راه به دختر جوان گفت از این به بعد میان مردان شجایی زندگی خواهی کرد و زن شایسته ای خواهی شد. هنگام عصر شیگایبای وقتی به چادرش برگشت و از جریانی که اتفاق افتاده بود با خبر شد، چهره از خشم برافروخته شد، روی اسب جستی زد و برای تعقیب آلدارکاس چهار نعل به سوی استف شد، اما نتونستونو پیدا کنه. آلدارکاس از اونجا دور شده بود، و بای بی آنکه چیزی همراه خودش بیاره با ناراحتی به چادرش برگشت